در بیان آنکه نقض عهد و توبه موجب بلا بود بلکه موجب مسخ است نقض میثاق و شکست توبه ها موجب لعنت شود در انتها نقض توبه و عهد آن اصحاب سبت موجب مسخ آمد و احلاق و مقد پس خدا آن قوم را بوزینه کرد چون که عهد حق شکستند از نبرد اندر این امت نبود مسخ بدن لیک مسخ دل بود ای ظلفتن چون دل بوزینه گردد آن درش از دل بوزینه شد خاران گرش در هنر بودی درش را زختیار خارکی بودی ز سورت آن همار آن سگ اصحاب خوش بود سیدتش هیچ بودش منقصد زن سورتش مسخ ظاهر بود اهل سبت را تا ببیند خلق ظاهر کبت را از ره سر ست هزاران دیگر. گشته از تو به شکستم خوک و خر